نسه بیسته هفته ارابه و چهارم از اقصام توابه ارابه و البدلو نابه چهارم از بدل از تاب علم و اصالتن بدل عبارت هست از یک تابه ده. تا اینجا همه توابه داخلن اما میگه علم و اصالتن اونیه که اصالتن مقصود به حکم یعنی شما وقتی میگید جانی زیدون بعد میگید اخوب جا انی زیدون بعد میگی اخوک جا انی زیدون اخوک حکم شما جا است آمده مطبوع شما که مبدلون منه زیده تابع شما که بدل اخوک اگر اگر شما گفتید جا انی زیدون وست چهار تا زید بود معلوم نبود کدوم زید باید توضیح کنید اونجا میدید استفاده صفت اصطحاب میکنید باید زیدون الاله زیدون ارکات اگر باور نمی کرد که زید اومده فکر می کنید غلام زید اومده باید تحکیت میکردید باید جاهنی زیدون زیدون یا زیدون لفظ اگر کسی دیگری هم امراش اومده بود باید جاهنی زیدون و هم بود. از عطف استفاده. اگر یک زمانی زید گفتید شناخت زید رو تا یه حضی شناخت اجمالی از زید چیه پیدا کرد بعد شما خواستید یه شناخت تفصیلی هم بهش بدید توضیح کاملی بهش بدید اما نواصفت با یه اسم جامع اونجا میشه حضر بیان یعنی دومی میاد اولی رو چکارش میکنه توضیح میده میگه جا هنی زیدون کردون. کرزون لغبش یعنی زیدی که چیه؟ کرزه زیده کرز ما دومی از بیان و لغب و اومده زیدش کار کنه بیان ولی تو این چهار قسمی که شما دیدید کدوم مقصود به حکم بود؟ خود زید یعنی آمدن واقعاً ما به زید بود حالا زیدگاه اوقات مهم میشود ما به وسیله بیان و نه چی کارش میکردیم؟ توضیحش میدادیم گاهی اوقات خوب جا نمیافتاد به وسیله تحکید تقریرش میکردیم گاهی اوقات یه چیز هم بهش عرض میکنیم اونی که مقصود به حکم بود خود مجبور اما گاهی اوقات هست ما میگیم جاهنی زید و مخاطب ما در کی نسبت به زید پیدا نمیکنه یعنی ما احساس میکنیم که زیدی که گفتیم اصلا مصمد و واقع نشد در اینجا مجبور میشیم چیکار کنیم بدل بیاریم بدل که میاد یعنی مبدل من در حکم صوته در حکم صووت یعنی چی یعنی انوار حکم جمله ما روی مبدل من به عنوان فاعل چیه نرفته و اصالتان رفته روی بدل جا انی زیدون میونه نفهمید کون زید اصلا هیچ چی نفهمیدسه نمیدونه زید چیه جاعنی زیدان که گفتیم بعد میگیم اخوک اخوک که میگیم همه ی جاعنی میده سراغ اخوک اصلا زیدان ایچ کارش میکنه ولش میکنه در اون که چون هیچ کاری برای ما نتونه اون تابعی که مورد قصد است قصد متکلم روی او رفته فقط اثانتا و اولا و بزاد تابع مورد فقط است نه مطبوع و تابع اومده باشه توضیح بده اینش میگم بدل لذا یادتون باشه که بدل در جای مبدلون من می نشیند یا بگو عامل مبدلون من و از بدل هم در می آید یا بگو مبدلون من در حکم سهوت است این سه تا جمعه هر سه جمعهش با اینه و هر سه تاش یک معنی و مفهوم داره و هر سه نیازه لذا میگه حوه از تاب المقصود و اسالتن تابه یک که مقصود از اسالتن به ما نصد و علامت بوده مقصود است به طور اسالت نسبت به چی؟ به آنچه که نسبت داده شده به سوی مطبوعش اون جانی که نسبت داده شده به زید ها اصالتن مار زید نیست وقتی بدن آوردی میشه مال کی؟ مال اون اخوکی که بردش شد پس بنابراین این اتا به اون مقصود و اصالتن به مانوس به الا مطبوعه حالا بدن چهار قسم است البته قسم چهارونش تحصیم متعدد داره چهار قسم یک قسمش دو سه قسمه ساخت یک بدل بدل کل از کل هست که بهش بگیم بدل دیگری هم اسمشو میسشنند بدل مطابق که گفتیم چون در مورد ذات باری تا کار میره به اسم مطابق گفتن اصح هست و بگیم کل از کل جون کل به ذهن انتام می دازی که جزئی هم باید باشی و خدا ایت اله تعالی از کل میست بدن کل یعنی مدل من رو بذاری توی ترازو کل بدن رو هم بذاری توی ترازو با هم دیگه میذونی میذونی دو تاشون دو مفهومن برای یک مستوا بدل شده هرچی بیا دو تا مفهومن برای یک مستاق زید و کرز یکی هست در عالم خارج ما دو چیز نداریم یه اشتاد گلوبرز داریم هم زید هست هم کرز هست یکی اسمش یکی نمیش. دو مفهوم هست برای یک مستاق کل از کرز یکی هم بدل بعض از کل بدل بعض از کل همون تو که اسمش معلومه بدل بعضی از کل مشخصه من میگم اکل تو رقیف هست خوردم رقیف را بابداری یعنی گرده یه نون اکل بعد میگم نصفهو این نصفهو یعنی چی؟ نصفشو خوردم الان واقعا اکل بعد باید رو کل رقیف یا بیره روی نصفهو اون نصفه اونه که مورد قصده من رو نخوردم اما گفتم نون خوردم بعد گفتم نصفشو خوردم آه معصود واقعی او بوده اکثر در رقیقه نسبه بدل برقرار بوده برخی از قلد مقتول قبل بعد بدل احتمال است بدل احتمال یعنی مبدل من از نظر معنا مشتمل بعد بدلی یعنی چی یعنی وقتی شما مبدلون من ها ذکر میکنید وقتی مبدلون من ها ذکر میکنید شوق و اشتیاقی در شنونده ایجاد میشه برای شنیدن بدن. برای شنیدن یعنی از نظر معنوی و از نظر درک مبدلون من مشتمل بعد. یا بدل اجتماع دیگاه کنید مثل چی؟ که انش شهر الحرام یسعلونه که عن شهر الحرام یسعلونه خیلو پاید کاف نفع عن شهر متعلق به یسعلون عل حرام هم سفتیشن دیگه پیغن بر ما یسعلونه که انش شهر الحرام ما میدونیم از تو سوال میکنن در خصوص ماه. حرام که این ماه که حرامه سوال می کنم خب اگه همینجا انسان وایسه ذهن همه مشغول میشه که یه سالونه که همه شهر حرام در چه چیزه شهر حرام سوال می آیا در جنگ کردن تو این سوال داشتن در سوال کردن در این نظاه داشتن در معامله کردن در این ماه نظاه داشتن در مسافرت کردن نزا داشتن در عقض و ازدواز مزاکره می کردن و بغون محروض داشتن چی بود؟ بعد بر گرده پشتش میگه گه قتال قتال این قتال یعنی جنگ کردن قتال مصبر قاتل و قاتل و مقاتل ازن قتالن و قیتال یعنی بین نیه یعنی جنگ کردن در این ما... مورد نظر از این سوال میکنن از این شرح. دیدید که شما مبدل من مبهم بود شغل ایجاد کرد برای شنیدنه بعد شما قطالفی رو لذا ببینید میگه ول اجتمال اون دو تا بدل کل از کل و بدل بعض از کلتون مشخص بوده یه تعریفشو رو نکرده ما بهتون گفتیمجا از پیشش مشخص تعریف اما بدل اجتمال میگه نه که مثل برد کنید که مشتمل باشه آخه مثال که میزنن مثل کتاب ادایی و اینا مثال میزنن به سرق قزیدون. بعد میگن سوگو سرق قزیدون. بعد میگن چی؟ سوگو دزدیده شد زید قارت زده شد زید بعد میگن لباسش بعد میگن ببین لباس مشتمل بر زیده زید و فراگر نه مشتمل ظاهری ما از نداریم ممکنه من میگم عجب انی زیدون زید منو شیفته خودش کرد. عجبنی زیدون بعد شما میگه خودشی چیه زیدین شیفت خودش کرد یه هم علموه این علموه میشه بدل اجتماع. پس مشتمل است نه مشتمل ظاهری بلکه مشتمل شوقی و مشتمل معنوی که متکلم وقتی مبدلون منه تو باب بدل اجتمال ذکر میکنه شوقی برای شنیدن بدل هست چون ما و هو الذي با استعمال اینه هو الذي مشتمل علیه المضمنه اونیه که مضمنه بر اون مشتمله میگه فراش گرفته میگه نه نه این بهیست رو میاره که اشتمال رو توضیح بده منظور از اشتمال اشتمال لفظی نیست مشتمل ظاهری نیست مشتمل معنوی یعنی شوق ایجاد میکنه بهیث یعنی و سامع الا ذكره به, ش... به شکلی که به محض شنیدن مبدلون من سامه شوق پیدا میکنه بی برای شنیدن چی؟ به حضیت شب و سامه و ایلا بکره نه با به آره. سال که انش شهر الحرامه قتاله از این مثال که من تدکیبشم کردن چند نکته در یکی ببینید قتال نکره از شهر الحرام که مبدلون منه من چیه پس در بدل ها نیاز به مطابقت در تحریک و تنکیر نیست فقط در ایراق مطابقت میکنه این مطلب اول مطلب دوم اینه که این فیه زمیرش به کی برمی به شهر حرام و در بدل اشتمال و بدل بعض از کل ما نیاز به چی داریم زمیر مبدل رو می لذا مثالی که زدم برای بدل بعض از کل چی مثال زدم؟ اکل تو رقیفه و گفتم نیست فهو و به که برمیگشت اما برا بدل وردار کل ما نیازه به رابط نداریم مثالی که زدم جا از زیدون جا اینی زیدون و گفتم افوک رابطی وجود نداریم بدل مباین بدل مباین که همون بدل غلط بهش میگم بدل مباین سه قسم. یک و هوبه انزو کرد مبالغه این که بدر برای مبالغه ذکر شد مثلا شاعری داره شعر میگه میگه حبیبی نجمون محبوبه من ستاره ایست مثل ستاره میدرمش بعد پیش خودش فکر کنه میگه خب ستاره که آخو زیاد نور نداره ممکنه حبیب دیگران ماه باشه یا خب بعد, بعد میگرده میگه حبیبی غمرون اول گفت نجمون بعد میگه چی؟ غمرون بعد اگه بخواد بالاتر هم بره میگه چی؟ شمسون در واقع دست کشید دیگه مبدلون به که نجم و بود وقتی شمسون رو میگه در واقع چیه؟ زعود، انگار اصلا برده قصدش؟ نه درست؟ این بدل، این نوع بدل در اشغال در مطالب سیلیت یادی اش اشعال و برای مبالغه خیلی <تصفيق> زیاد میگه پرانی عالمه برای عالم خب خیلی میگه علامه، احلامه که میگیم دیگه اون از اون عالمیت چه کردیم؟ دست میشه. میگه بل بدل المباین و خبه امزکرن المبالغته اگر ذکر شده باشه برای مبالغه سمیه بدلن بدا بهش میگم بدل بدا بدا یعنی ظهور یعنی انگار انسان اول که میگه نجمون برایش ظاهر میشه که چی؟ کمه باید بگه قمرون بعد برایش ظاهر میشه قمر کمه باید بگه چی؟ شمز بهش میگن بدل بدا که که حبیبی قمرون بعد میگه قمر خودش نورش از میگی میگیره پس بگیم فرشیده شمز و یک خوره دن گفتها و این نوبدن این نوبدن از فسیحان خیلی زیاد واقع میشه این نوع بدل از ها چیه؟ خیلی خیلی زیاد با این چیه؟ دایانه دیگه اول تدار و کل غلط. چوشه بدل غلط. تدارو که جبران. برای جبران غلط به این بیچاره میگن بدل غلط نه اینکه بدل غلط غلط بودن صفت بدنه. ها؟ بدل غلط یعنی چی؟ یعنی بدلی که برای غلط آورده شده یعنی مبدلون منهش غلطه گرفتین چی میگم یا نه لذا بدل غلط که گفتن یعنی بدلی که مال غلطه یعنی مال مبدلون منه غلطه نه اینکه که بدل غلط یعنی بدل که صفتش اینه غلطه این است. این درست اول تداره که غلط برای تداره که غلط آورده بشه فبدلول غلط. بهش میگم بدل غلط بدل غلط یعنی چی؟ یعنی بدلی که برای غلطی آورده شده که در عبارت استفاده مزه چی میگه جانی زیدون جانی زیدون بعد میگه زید نبود که بابا عصب بود جانی زیدون بعد میگه الفرسو آه. یعنی زید پریده به زبانش دیدید دید نه یعنی بعضی ها رو موقعی که یه چیزی میخواد بگه میگه ام من میگه نه زید اومد نه م... فلان اومد همتون پشت سر هم زبان غلط میکنه اینطور آزه میگه از اول الفرس اومد زید پریده به زبانش جانی زیدون الفرسو میگه ولا یا اومن فسیح میگه این بدل از آدم فسیح واقع نمیشه یعنی چی؟ یعنی آدم فسیح غلط نمی کنه؟ چرا؟ غلط میکنه ولی آدم فسیح در اینجا به شکل بدل دیگه نمیاره اینو نکتر داشته باشید نه یک آدم فسیح غلط نمی کنه آدم فسیح هم غلط میکنه به جز محسومی هیچ کس محسومه از قلط و خطا نیست بلکه منظور اینه که اگر خطا کرد خطاشو با بل درست میکنه میگه جا از ایدون بعد میگه زید نبود که میگه بل الفرس و. بل الفرس مثل این میشه شما بگید امرو مد بگید ببخشید ببخشید زید این چقدر فسیل میشه همین با یک ببخشید شما کلامتون رو درست کردید تا بگید امرو مد زید اومد خوشتر هم مطلب رو زید. لذا انسان فسیل اگر بخواد جبران غلط خودش رو بکنه به وسیله بل انجام میده مشخص شد این یه نشته بعد غلط هم که انسان میکنه دو جوره یعنی باز اینو تقسیم میکنم بدل قلط یه موقع از ذهن انسان غلط میکنه یه موقع زبان انسان یه موقع هستش که انسان واقعا هم برش مشتبه میشه که زید بود رفت تو خونه یا هم بود ما باید کنه اول میگه زید. اول با زرس قاطع عقلش به زبانش دستور میده که بگه زید. بعد همون عقل دوباره برمیگرده میگه بابا زهن قدش کتاقی میکرد تو بلند کن پس این عمر بود دوباره برمیگرده میگه این فرایند ذهنی شاید در یک کمتر از یک ثانیه صورت بگید درست شو. اینجا بهش میگن بدل نسیان یعنی بدل غلط از نوع نسیانه یعنی چی؟ یعنی فراموش کرده عقلش خطا کرده زبانش تحت فرمان بوده عقلش اولین بار برگشته گفته اون که رفت تو زید بود گفته ده از زیدون بعد یهو یادش دادی که زید قدش بلند بود اون کوتاه بود که رفت تو برگشته گفته چی؟ احمد این بدل بدلیه که ذهن خطا داده. اما گاهی اوقات از ذهن درست فرمان داده ها ذهن گفته بگو فرند جانل فرند ها اسبی اومد پیش من اما ذهن که فرمان درست داده زبان به غلط چرخیده زبان خطا کرده لذا گفته چی اول زیدون بعد مجبور شده دستور مغز و اداره کنه و بگرده یعنی یا خطا خطایی که قبه مدرکه انسان خطا کرده یا آلت بیان کننده مقصود اون قبه مدرکه یعنی زمان علایه ها خلاصه خطا سوبرده درست؟ و اگر بخواد انسان جبرانش کنه باید به وسیله چی جبران کنه؟ بده. دقت کنید هدایتون لا یبدل و رو و اسم ظاهر از زمیر بدل آورده نمیشه شو فی بدل کل در بدل کل از کل اسم ظاهر بدل از زمیر آورده نمیشه مشخصه معلوم شده نه؟ در بدل کل از کل ما چی اسم ظاهر رو بدل داشته باشیم از چی زمیر نفی پایین هاشیه سه رو نگاه کنید میگه بدل کل منر کل اون منر کلش بود به خلاف بدل بعض و بدل اجتماع یعنی در بدل بعض و بدل اجتماع و بدل غلط ما داریم که چی؟ بدل آورده شده اسم ظاهر از زمیر درست شد و انل مانع مفقودن افخود اون پیها زیرا در اینها وجود نداریم ازلیس هم مدلول و سانیفی ها مدلول اول زیرا معنا و مفهوم دومی یعنی بدل در این ستایی بعدی مدلول و معنای اولی نیست چون ببینید در بدل کل از کل مدلول و مفهوم همون اولی و دومی چیه؟ یکی کل از کل دیگه لذا نمیشه که زمیر زمیر که عرف معرفه کارماره نتونه را بندازه بعد اسم ظاهری که از اون پایین تره بتونه بیاد چکار کنه مخدوده به ظاهر بشه درسته میگه بدل آورده نمیشه اسم ظاهر از دمیر در این موقع فیقالو حالا نگاه به مثال میزنه اشترای تو که به یه عبد میگه اشترای تو که خریدم تو رو ها بعد میگه میشه فاکر نیست تو خریدم حالا اسم صاهر بدل از ضمیر آورده شده یه نه بدل بعض از کل دیگه یا اشترای تنی خریدی مرا یعنی زمین متکلم بعد میگه نصفی بعد میگیم اعجبنی یا بهتر بگید اعجب تنی اعجب تنی یعنی منو شیفته خودت کردی اونو ترس کنیم عجب تنی بعد میگی چی؟ علمک این علمک بدل از چی اومده؟ بدل از تا اومده دیگه نه؟ بدل پشت میمو میگی تو منو شیفته خودت کردی بعد میگی فلکت علمت منو شیفته. بدل پشت عجب تو کرد تو رو شیفته خودم کردم چیه من تو رو شیفته خودش کرد؟ این بدل میشه از برای او اون یکی بدل که بدل از تبود این یکی علمی بدل از توه هجب توزمیر متیکرم نقل از کتاب جامعیسی که که حاشیار درست میشه پس اسم ظاهر بدل از زمیر آورده نمیشه در بدل کل از کل مگر از قایب از قایب چرا بدل آوازه نه چطور نه با زرب توهو زیدن یادتونه یکی از موارد اول زمیر و مرجعه متاخر لفتی و ای همین بود که الان زرب توهو زمینش به کی برمیگرده به زید زید متاخر است در لفت در رتبه هم چیه متأخر زرب توهو زیدن اینجا میشه چرا؟ چون ببین الان ممکنه که اون زمیر نتونسته باشه کار ما رو راه بندازه چون زمیر خودش باید برگرده به یه اسم ظاهر تا معناش چیه؟ مشابه. میتونیم بگیم این زمیر در حکم صوادر نتونسته کار ما رو راه بندازه. بعد اسم ظاهر اومده کار ما رو چیه؟ راه انداخت. ولی در مورد اسم زمیر متکلم و زمیر مخاطب این امکان نداره. چون زمیر متکلم و زمیر مخاطب عارف معرفه. مگر میشه اونها نتونن کار رو راه بندازن؟ بعدی یه اسم ظاهری بیاد جای اونها بشینه کار رو میدن در مورد زمین متکلم و زمیر مخاطب این اقلانی نیست اما در مورد زمین قایب چرا چون زمیر پایین تر از اسم ظاهره زمیر متکلم و زمین مخاطب بالاتر هم چون بالاتر هم دیگه امکانه این که بگیم اونها در حکم سقوط پایینتر یه کارمان رو بندازه نیست ولی در بدل بله چی بدل زمیر غایب میشه چون زمین زمیر قایب پایین تر از اسم ظاهر زمیر غایب معنا و مفهومش از که میگیره؟ از اسم ظاهر زرب توهو زیمن قال از محققین یکی از آقایون محققین در نه اینطور گفته لا یب دلال مز من مثله. گفته زمیر از زمیر بدل آورده نمیشه خب این راست هم گفته اگر یه جایی دیدید زرب توهو زرب توهو ایاهو این ایاهو رو چی بگیری؟ تحکید بگیرید از زرب توهو و بدل نگیرید چرا چون بدل غلطه های گفتی چرا غلطه؟ به دلیل اینکه مگه میشه خب اگه اولی نتونست کار را را بندازه دقامی هم مثل همونه دیگه چیزی بالاتری نداره که شما بگید مبدلون من در حکم سقود بدل اومد کار ما را را اندار اصلا این امکان نیست هر جبتش زمیر زمیر با زمیر فرقی نداره که بگید یکیش موقعیتش جوری بود که اون یکی در راک رو سبوت شد جبتش اون یکی لا یک دلال رو و لا ظاهر میگه زمیر بدن آورده نمیشه از اسم ظاهر زمیر آوردیم، زمیر کار را انداخت من مثلا اینطوری بگیم ز... زربت و زیدن ایاهو بالاش میدید که و زیدن ایاهو میگن این اصلا غلطه درست نیست چرا؟ میگه آقا که زید نترسته باشه که از مرجع زمیره معنا و به ما بفهمه بعد ایاهو آوردیم ایاهو خودش برمیگرده به کی؟ او به ذهن. این او تو باشه قراز ما رو عدای کرده مفهوم ما رو درست کرده این اصلا نمیبانش عقلانی نیست اثنان. لذا میگه ذرفت تو زیدن ایگاهو درست نیست و ما مستربهی و آنچه که مثال زده شده به او تو این زمینه مثل همین مثالی که من زدم و ما مستلبهی لذالک و آنچه که مثال زده شده برای او برای این مثال برای این مورد مثال زده شده نظالک برای این مورد مثال زده شده مسوق اون العرب، عرب ساقه یسوق یعنی ساختگی مسوق یعنی ساخته شده دستکاری شده بر عربه آه یعنی غالب کردن به عرب رو پراستش چون سیاقت یعنی غالب زدن غالب به عرب کردن ولی عرب همچین چیزی نمیگه نمیگه زرب تو زیدن ای بگیر در حجم صحود ایگاهو اومده کار رو بس کرد یعنی غلط محصه میگه مسوق اون علال عرب تو بعضی از نصفش داری مسنوع اون العرب عرب مسنوع اون عرب. یعنی عرب یه چیز یعنی برقلق رو بستن همچنین چیزی هره هم مسوق اون علال عرب میگیم زمیر از زمیر ما دیدیم مثل قوم تو هنه لقه تو زیدن ایگاهو میگه در قومت و انا که شما دیدید میگه ومانند مانند قومت و انا و لقایت و زیدن ایاهو اگر یه همچین چیزی رو دیدید واقعا تحکیدان لفظید اولیش دیده شده اما دوبومیش دیده نه شده لقایت و زیدن ایاهو گفتیم مسوخو نه لقایت و انا اصلا دیده نشده پایین نگاه کنی آشیه 3 و انا و لقایت و زیدن من ما ظاهرو بسان یعنی هر تا فوا به لفظی فقط تقدم از آلکه بی بحث تاکید و تذکر فلیسن من قبیل بدر ها میگه اینو اون بحثش کردیم که این از قبیل بدر اصلا حساب نمیشه بلکه اولیش درسته قمت و انا از قسم تاکید اما لغیت و زیدن یاهم ای این همون مثاله چیه مسوقا عرب مسوق بر عربه و صحیح نیست اصلا شنیده بگید نشده. دو نشان که کتاب مغنی میگه لغید و زیدنی یاوا اصلا غلطه. چه نیده پنجم عطف بیان است. عطف بیان مثل صفت است. عطف بیان مثل چیه؟ صفت. فقط برقش با صفت اینه عطف بیان جامد است. صفت چیه؟ مشتق. و در چهار تا چیز از ده تا چیز هم کار میکنه. مطابقت میکنه مثل صفت به حال موصوب مثل صفت به حال موصوب در چهار تا چیز از ده تا چیز چیه؟ با اعراب افراد و تصمیه و جمع ها ای تا حالا تعریف و تنکیر تذکیر و تنکیر این هم تا ده از این ده تا در چهار تا چیه؟ مطابقه. از هر قسم یکیش رو با مبدل با معتوفان علی خودش مطابق عطف بیان همونطور که از اسمش پیداست یعنی مبهم شده یه مقدار ما به وسیله یک اسم جامعه دیگه چکارش کارش کردیم؟ بیانش توضیحش داریم میگه عطفل بیان وقوه تا یوش به اون یشبه و سفر این تابه به که شبیه سفر پس با این یوش به سفر بقیه خارج شد سفر خودشان خارج شد فی توضیح مطبوعه در توضیح دادن مطبوعه شبیه به سفر شبیه یک چیز خود اون چیز نیست خب دیم این جامعه اون چیه؟ نه با جا زیدون خب زیدو شناخت اما یه میدونم چیه شک کرد کدون زید چه جور بعد میگیم اخوک اخوکی که میگیم میاد زیدو کار میکنه توضیح تابع مورد نظر ما اخوک اینجا فقط برای توضیح آورده و یتبه و حوپی عربت من اشترده مشترده الان در همین جا زیدون اخوک اگر اصلا زیدون اشترده هیچ چی ما مجبور شدیم اخوک رو بیاریم این میشه چی؟ بدل بدل کل از کل. اگه زیده یه ندار شناخته ما اخوکو آوردیم توضیح بدیم این زیده این میشه چی؟ میشه عطف بیان پس عطف بیان با بدل کل از کل ممکنه چیه؟ مشتبه میشه باید از غرض و شناخته. شناخت یک ولی چند جا هست چند جا هست که عطف بیان ممکنه اما بدل ممکن بگی. عطف بیان ممکنه اما بدل ممکن نیست چرا؟ به دلیل، به این که خوبش کنید هر چیزی که بدل واقع میشه باید برود و جای مبدلان به بگید بشینه قدرت شد داشته باشه که بره جای مبدلان به چون مبدلان به در حکمه سقوط اما در عطف بیان این شرط نیست در عطف بیان این شرط نیستش که این بره بشینه جای م چون این فرق بین حرف بیان و بدن هست اینجاها ببینید بدل میشه اما عطف بیان نمیشه حالا نگاه کنید یقتر قعنل بدل جدا میشه حرف بیان از بدن فی نحوه در مانند این مثال نگاه کنید هندون قام ابو ها زید الان هندون مبتداه قامفه ابو ها چیه فاعل میشه حالا کی برمیگرده به هند رابط خبر است به؟ مبتدار رابط جمله خبر به؟ مبتدار زید اگر به بیان باشه برای اطبه هیچ اشکال نداره چون نمیره بشینه جای ها؟ و ابوها سر جای خودشه سقوط نکرده لذا حابر میگرده به هند و مشکل حل ده رابط هم ده اما اگه گفتیم زید بدل است از ابوها ابوها میشه چی؟ ساغت. وقتی ابوها ساگت چه میشه قام زیدون جمله قام زیدون صلاحیت خبر شدن برای هند رو بکید نداره چرا نداره به دلیل اینکه زمین رابه دقیق کردید پس بنابراین هندون قام ابوها زیدون مشخص شد لعن المبتلمه میگه چرا اینجا میگه گیم لعنن مبدلمن مستقنن انفظ زیرا مبدلمن مستقنی هستیم از او اگه بدل بگیریم و هنها لاوض و اینجا ما لابود ده که مبدلمن رو نیگرش داریم نمیتونیم ازش مستقنی شیم چرا لاوض ده انکی نیگرش داریم به که به زمیرش نیاز داریم اون زمیر قابل حذف نیست آه. اون زمیر قابل حضم و pesina و در مانند این مثال یا ای دو الهارس الهارس لغف باشد ها و الفلامش هم الفلام لمحه یادتونه توی کتاب مثال مسواذ اینجا تو همین بحث این کتاب هم با این الهارس رو داشتیم تو بحث انگاه نکخلی یا ای دو الهارس الفلامش به اله سعد فلام اله الان اگر الهارت اثر بیان برای زید باشه هیچ اشکال نداره چون نمیره بشینه جای زید میاد زیدو توضیح بود اما اگه بدل باشه غلط در میاد چرا؟ چون میره میشینه جای زید و یا بخاره هل فلام دارده و این غلطه درست است این مثال جا از زار بر رجله زیدن از زار بر زیدن جاعفل از زارب و فایلش که صفت علف لام داره هست؟ اضافه لفظی اضافه شده به هر رجل اشکال داره؟ نه علف لامدار به علف لامدار اضافه بشه اشکالی؟ نداره تو حسنالو بچه یادتون نکنه پس زید اگر عطف بیان باشه برای هر هیچ مشکلی نداره چون نمیده به شیر جای ولی اگه بدل باشه غلطه چرا؟ چون زید بیره میشینه جای هر و علف لام دار اضافه میشه به بی علف لام و این غلطه همچه چیزی میسه جا از زاره بود چرا؟ لندل بدل پی نیت تکرار به تقدیر تکرار رامه زیرا بدل در تقدیر است که آمل مبدلنمه بر سر او هم چیه؟ تکرار میشه یا بگوییم میره میشینه جای مبدلنمه دار نمیکنه میره این میره به سراغ عامل یا عامل میاد به سراغ راغه البدر البدل فی نیت تکرار عامل و یل حارس اگه بگیم یل حارس یا بگیم وذ دار گزیدن آن. یعنی غلطان هر دو چی اند غلطان اولی غلطه چون جمع بین یا و الف فلام میشه دومی غلطه چون الف فلام دار به بی الف لام میشه توابع تمام شد خوب توابع رو مطالعه کنید خوب مطالعه کنید ها. توابه نیاز اصلیه بعد این مطالبی که بعد میخوایم بخونیم همش رو شما خوندید مستر، اسم باقیل، اسم مخبول، صفت موشبه، افعال و تفسیر همه رو توی هدایی خونید لذا حواستون جمع کنید توابه رو خوب برید دستبندی کنید